می خوردن و گرد نیک گردیدن بهزان که به زرق و ورزیدن گر آشق و مست دوزخی خواهد بود پس روی بهشت کس نخواهد دیدن نتوان دل شاد را به غم فرسودن وقت خوش خود به سنگ مهنت سودن در دهر که داند که چه خواهد بودن میباید و معشوق و بهپاما سودن نیک است به نام نیک مشهور شدن آرست ز جور چرخ رنجور شدن، خمار به بوی آب انگور شدن، بهزان که به زهب خیش مغرور شدن. یارب به دل اسیر من رحمت کن، بر سینه غم پذیر من رحمت کن، بر پای خرابات رو من بخشای، بر دست پیاله گیر من رحمت کن.